این یکی از گیج کننده ترین قسمت های کتاب مقدسه. یعقوب رو دوست دارم و از ایسو نفرت دارم. عجیب ترین که خدا حتی قبل از تولد اونها اینو گفت. عزیزان به یکی دیگر از درس های کتاب مقدس خوش اومدیم. امروز ما با همدیگه کلام خدا رو مطالعه می کنیم و یاد می گیریم که چطور در زندگیمون به کار گیریم. مردم اغلب تجرب می کنن که چرا خدا گفت از عیسو نفرت داره. اما سآل جالبتر این که چرا خدا یعقوب رو دوست داشت؟ برای این محبت حیرت انگیز و فیض خدا بیاد به همراه معلممون درس جدید رو شروع کنیم. شما کی هستید؟ خب، حالا وقت شروع کلاس دانشکده کوچک کتاب مقدسه، مهمترین مطالعه دنیا چون که ما مهمترین کتاب جهان رو مطالعه می کنیم، کتاب مقدس رو از پیدایش تا مکاشفه. در این جلسه ما شخصیت کتاب مقدسی یعقوب را مطالعه می کنیم. این شرح تولد یعقوب هست که می اونو در پیدایش باب 25 ببینیم. خداوند به ربکا گفت دو امت در بطن تو هستند و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قومی بر قومی تسلط خواهد یافت و بزرگ کوچک را بندگی خواهد نمود و چون وقت وضع حملش رسید اینک تو امان در رحم او بودن و نخستین سرخ فام بیرون آمد و تمامی بدنش مانند پوستین پشمین بود و او را ایسو نام نهادن و بعد از آن برادرش بیرون آمد و پاشنه ایسو را به دست خود گرفته بود و او را یعقوب نام نهادن و در حین ولادت ایشان اسحاق شست و شش ساله بود داستان یعقوب بابهای زیادی از کتاب پیدایش رو دربر می گیره همونطور که داستان ابراهیم بود این بابها 20 سال از زندگی یعقوب رو دربر می گیرن. داستانی رو از باب 32 انتخاب کردیم که در آیه نه یعقوب دعا میکنه و میگه یعقوب گفت ای خدای پدرم ابراهیم و خدای پدرم اسحاق ای یهوه که به من گفتی به زمین و به مولد خیش برگرد و با تو احسان خواهم کرد کمتر هستم از جمیع لطف ها و از همه وفایی که با بنده خود کرده ای زیرا که با چوب دست خود از این اردن عبور کردم و الان مالک دو گروه شدم اکنون مرا از دست برادرم و از دست ایسو رهایید زیرا که من از او میترسم مبادا بیاید و مرا بزند یعنی مادر و فرزندان را بعد یعقوب تنها شد و مردی با او کشتی گرفت تا سپیده بدمد. حالا وقتی او دید نمیتونه بر یعقوب غلبه کنه ران او را گرفت و بالای ران یعقوب در حالی که با او کشتی می گرفت آسیب دید او گفت بذار برم چون سپیده میدمد اما یعقوب گفت اجازه نمیدم بری مگر اینکه که برکتم بری. پس به او گفت اسمت چیه؟ جواب داد یعقوب گفت بعد از این نام تو یعقوب نخواهد بود بلکه اسرائیل چون تو با خدا و با من کشتی گرفتی و قلبه کردی بعد یعقوب از او سوال کرد نام تو چیست؟ خواهش می کنم نام خودت را به من بگو او گفت به خاطر چه نام مرا می پرسی؟ و او را در آنجا برکت داد و یعقوب نام آن مکان را فنوئیل خواند و گفت زیرا خدا را رو در رو دیدم و حیاتم حفظ شده اینجا در داستان یعقوب ما حقیقتی رو میبینیم که خدا میخواد به ما یاد بده خدا خیلی مشتاقه که به ما ایمان رو بیاموزه از این رو این بابها رو در مورد داستان ابراهیم میده خدا میخواد چیز بیشتری به ما یاد بده و به خاطر اینه که تمام این بابها رو درباره داستان یعقوب به ما میده کلید حقیقتی که خدا میخواست به ما توسط زندگی ابراهیم یاد بده به نظر میرسه که بر مذبهی که ابراهیم ساخت تمرکز داره. کلید حقیقتی که خدا میخواد توسط زندگی یعقوب به ما بده به نظر میرسه نام یعقوب متمرکزه. یعقوب دو قلو متولد شد و کلام میگه او به این دنیا اومد در حالی که پاشنه برادرش ایسو رو به چند گرفته بود. به خاطر این نام او یعقوب شد که به معنی است یا رب یا آدم حقه باز نام او در واقع از مردی با ما حرف میزنه که به محض اینکه او وارد این جهان شد و در این دنیا رشد کرد یک رباینده بود در خانه یعقوب دو چیز بود که ارزشمند بود حق نخوص سادگی و برکت یعقوب هر دوی آنها را رو بود او به حق یعقوب یا روباینده نامگذاری شد داستان ابراهیم بر مذبح او متمرکزه داستان یعقوب بر نام او متمرکزه که بر مبنای تولد او هست. این داستان بسیار جالبه داستان تولد یعقوب در هر دوی اینها هم پیدایش و هم باب 19 رومیان جایی که پولس رسول به ما تفسیری از تولد یعقوب میده به ما گفته شده که قبل از اینکه یعقوب به دنیا بیاد وقتی که هنوز با برادر دوقلویش ایسو در شکم مادرش بود خدا گفت من کوچکتر را دوست دارم و از بزرگتر نفرت دارم از این رو بزرگتر کوچکتر رو خدمت خواهد کرد خدا به یعقوب و عیسو اشاره می کرد قبل از اینکه به دنیا بیایند برای عیسو متاسف نباشید کتاب مقدس میگه عیسو مرد کفرگویی بود کلام خدا میگه عیسو آشکارا حق نخست زادگیش رو تحقیر کرد عیسو به چیزهای روحانی اهمیت نمیداد عیسو نمونه ای از یک انسان سکولار بود از نسل عیسو عدومیها ها پدید اومدن. وقتی که به کتاب اوبدیا رسیدیم در مورد آنها یاد خواهیم گرفت. اونها در منطقه ای که امروزه به نام شهر سنگ سرخ یا پتر نامیده میشه مستقر شدند. عدومی ها در قارها زندگی می کردندند، اونها حمله میکردند و کاروان ها غارت می کردن. در صحرای زیر اورشلیم می میگشتند و بعد فرار میکردند و به خانه های سنگی خود میرففتند. اونها با تنابها بالا میرفند، و بعد تنابها رو به خانه‌های سنگی خود می‌کشیدند. اونها بر این باور بودند که شکست اونها اونها دوست داشتند که به ارتش ملحق بشن. روش اونها این بود که اورشلیم رو غارت کنن. کسانی که از نسل عیسو آمدند، دشمنان بلفطره و دائمی اسرائیل بودند. برای عیسو متاسف نباشید، چون خدا خدا هست، او همه چیز رو می‌دونه. به محض اینکه خدا به شکم ربکا نگاه کرد، رو دید. خدا میدونست که چه بر سر دقلوها خواهد آمد برای خدا چیز آوری نبود که چه چیزی داره پیش میاد خدا به ما میگه که یعقوب رو دوست دارم و از ایسو نفرت دارم چون که خدا تمام کارهایی رو که ایسو و او قرار بود بکنن میدونست همین که به داستان یعقوب میرسید به عنوان یک زندگی نامه نکته اصلی داستان کلمه فیز هست. در داستان ابراهیم ما ایمان رو یاد میگیریم در داستان یعقوب ما فیض رو یاد میگیریم کلمه فیض به این معنی هست لطف و برکت خدا که شما شایستهش نبودید برای کسبش کاری نکردید فیض به شما داده میشه به خاطر محبت خدا شما اون رو به دست نمیارید کسب نمی کنید و یا حاصل نمی کنید شما اون رو نمیسازید فیض یعنی لطف و برکتی از خدا که شایستهش نیستیم جالب ترین چیز در مورد یعقوب اینه با وجودی که او یک رو است او میدونه که تمامی برکت او از خدا میاد. ولی عهد جدید به ما میگه که در سرتاسر سر زندگی یعقوب چون که توت اگر و زیرک و باهوش و رباینده بود، همه اون برکات رو به دست نیاورد. بنا به گفته عهد جدید، یعقوب اون برکات رو به خاطر فیض خدا دریافت کرد. قبل از اینکه یعقوب متولد بشه، این نقشه خدا بود که برای یعقوب این برکات رو بده. در داستان یعقوب، حقیقتی که خدا با مادر میوم میذاره، چیزیه که ما میتونیم بهش تشخیص بحران بگیم. این چیزیه که امروزه به این نام معروفه تشخیص بحران مفهوم بسیار معروفی هست امروزه به اون بحران هویت هم میگیم شما کی هستید؟ شما چی هستید؟ و انتظار میده که کجا باشید؟ این تشخیص بحران هست. در کتاب مقدس به این اراده عالی، نیکو و پذیرفتنی خدا میگن. کتاب مقدس به ما یاد میده که وقتی خدا من شما رو خلق کرد، او الگو به کار نبود هیچ کسی مانند شما نیست از کسی انتظار نمیره که مثل شما باشه و کسی هم شبیه کس دیگری نیست هر کدام از ما منحصر به فرد هستیم اگر به لغتنامه نگاه کنید کلمه خود به معنی فردیت هست یگانگی هر شخصی که او را از دیگر اشخاص متمایز میکنه کتاب مقدس به روش های خیلی جالبی کلمه خود رو به کار می او به ما میگه که وقتی بر خلاف خودمان هستیم و وقتی که ما بر خلاف یگانگی حرکت میکنیم مشکلات بزرگی داریم و اون شخصیت که انتظار میره داشته باشیم نداریم. به گفته کتاب مقدس کاری که باید بکنیم اینه که خودمون رو پیدا کنیم و خودمون رو گم نکنیم. به قول عیسی وقتی پسر گم شده تصمیم گرفت به خانه برگرده کتاب مقدس میگه او به خودش آمد. خدا میخواد ما این شخصیت فردی که او برای هر کدوم از ما ترکرده رو کشف کنیم. در رساله پولس رسول به رومیان باب دوازده دو آیه اول اون به عنوان خاست نیکو پسندیده و کامل خدا برای شما یاد شده. بعضی ها به اون بحران هویت میگن و اون چیزی که زندگی یعقوب شرم میده یک بحران هویت. بعضی روانشناسان به ما میگن که اگر شما در خانوادتون سه فرزند دارید و اونها پشت سر هم متولد شدن مثلا با یک دو سال فاصله پویایی شخصیت کوچک اونها به طور وسیعی بستگی به جایگاهشون در خانواده داره برای مثال اونها میگم بچه اول خلاق خواهد شد برای اینکه بچه اول در حالی که با همدیگه بزرگ میشن همیشه با بچه دوم سرکله و خواهد زد از این رو بچه های خلاق بزرگ میشن و اشخاصی اجرایی میشن در حالی که اونها همیشه خلاق بودند ساختن چیزها شخصیت اونها رو شکل میده و اونها تبدیل به اشخاص اجرایی میشن اونها زندگیشون رو با گفتن اینکه دیگران چی کار بکنن سپری میکنن گفته شده که فرزند دوم برای خلاص شدن از بچه اول شخص ورزیده ای میشه او همیشه سعی میکنه مانور بده تا از دست خلاق رها بشه پس او یک متخصص مانور میشه بچه های دوم معمولا وقتی بزرگ میشن، سیاستمدار، مدار، وکیل و یا مشاور میشن. بچه سوم گفته میشه که بین خلاق و منوردهنده دائما در حال گریز از اونهاست و همیشه احساس بیهودگی میکنه و تبدیل به یک جنگنده میشه. او راه خودش رو از بین موقعیت ها باز میکنه. این کودکان اغلب تبدیل به افراد نظامی بزرگ و یا مدافعان بزرگ در بازی فوتبال میشن که دوست دارند خطوط دفاعی دشمن رو دف به گفته روانشناسان، راجب بچه چهار روم کسی حدسی نزده. این به این معنیه که بچه چهار روم میتونه مجموعی از این سه باشه. بخشی خلاق بخشی مانورگر و بخشی جنگنده. داستان یعقوب به ما میگه که وقتی دو ها متولد شدن، به خصوص اونی که پاشنی برادر دیگر رو چنگ زده بود، او از هر چیزی یه خورده داشت. او خلاق بود، مانوفگر بود و یک جنگنده بود. این یعقوبیه که ما در کتاب مقدس با او برخورد می‌کنیم. ما می‌بینیم که با عیسو و پدرش سر و کله می‌زنه، می‌بینیم که مانور میده و می‌جنگه و در این حال فکر می‌کنه چون شخص خلاق و مانورگر و جنگنده، برکات را از خداوند دریافت می‌کنه. اما خدا سعی می‌کنه که به او دست پیدا کنه. اگر داستان یعقوب رو خونده باشید که از باب 25 شروع میشه و تا باب 32 و بعد از اون ادامه داره، بارها و بارها متوجه خواهید شد خدا سعی میکنه و قصد داره که به این مرد برسه و به او بگه یعقوب آیا تو نگاه نکردی و ندیدی که من در زندگی تو کار می کنم؟ سه نگاه در زندگی هست که ما باید واقعا یاد بگیریم اولی نگاه به بالاست در این طرح بررسی زندگی نامه در کتاب مقدس توجه کنید که گاهی اوقات برای خدا زمان زمانبر هست که این اشخاص رو وادار کنه که به بالا نگاه کنند اما اونها اگر میخواند بحران هویت خود را حل کنند باید به بالا نگاه کنن. ببینید خدا اونها رو خلق کرده و برای اونها برنامه ریخته اونها تا زمانی که به بالا نگاه نکنند هرگز نخواهند فهمید که قرار اونها کی بشن یا قرار که چی بشن، یا قرار که کجا باشن اگه ما واقعا میخوایم کسی باشیم که خدا میخواد باشیم دومین نگاه که باید بکنیم اینه ما باید به درون نگاه کنیم چیزهای خاصی هست که خدا میخواد ما در خودمون بدونیم. یادتونه که داوود چگونه دعا کرد؟ خدایا مرا تفتیش کن، قلب مرا بشناس، مرا امتحان کن و افکار مرا بشناس و ببین آیا در من شرارتی هست؟ و مرا در راهای ابدی هدایت فرما. همه ما باید این دعا رو بکنیم، همه ما باید به درون نگاه کنیم و بگیم خدایا من قلبم رو نمیشناسم. پس تو، انگیزه هایی رو که نباید در قلبم باشه به من نشون بده افکاری که نباید در ذهنم باشه به من نشون بده چون که میخوام در راه راستی برم من به این نگاه به درون میگم پس کسی که به بالا و به خدا نگاه میکنه همیشه به درون هم نگاه میکنه کسی که به بالا نگاه کرد و واقعا به درون نگاه کرد حالا آماده است که به اطراف نگاه کنه و با مردم مرتبط بشه و بخشی از راهحل، و بخشی از جواب خدا باشه، برای اینکه به یعقوب یاد بده که به اطراف نگاه کنه، خدا به او خیشاوندانی داد. یعقوب یک شیاد بود. این مشکل او بود. چرا خدا باید مراقب یک شیاد باشه؟ یک شیاد بزرگ. این روش شفای مورد نظر خداوند برای یک شیاده. پس خدا یعقوب رو به مدت 20 سال نزد دایش لابان قرار داد. در داستان یعقوب بعد از اینکه یعقوب مادر و پدرش رو فریب داد و حق سادگی و برکت رو ربود مادرش نزد او آمد و گفت تو مجبوری که اینجا رو ترک کنی یعقوب چون که تو را خواهد کشت پس او خانه رو ترک کرد وقتی یعقوب خانه رو ترک کرد مثل ترک کردن خانه امروزی نبود او نمیتونست بره بیرون و در یه هتل و یا جایی مثل اون بمونه به جز بیابون اونجا چیزی نبود مادرش گفت من برادری دارم که اسمش لابانه، او دایی تو هست. او در بیابان ساکنه، تو مجبور خواهی شد بری و با داییت لابان ساکن بشی، چون که برادرت میخواد تو رو بکشه. پس یعقوب به سوی بیابان راه افتاد، این برای او چالشی بزرگ بود. ترک خانه همیشه ترساننده بوده، اما برای یعقوب مخصوصاً چندین برابر بود. در نخستین شبی که بیرون بود، او سنگی رو به عنوان بالش زیر سرش نهاد اون شب او تجربه ای روحانی داشت او خوابی دید که در آن نردبانی بود که فرشتگان از آن بالا و پایین میرفتند. در خوابش خدا بر او ظاهر شد و وعده‌ای رو که با ابراهیم بسته بود به او ظاهر کرد خدا وعده داد که یعقوب بخشی از قومی خواهد شد که خدا فراهم خواهد ساخت قومی که خدا به وسیله آن وارد جهان خواهد شد خدا به یعقوب گفت من تو را برکت خواهم داد و تو را کثیر خواهم گردانید و تو را به خانه باز خواهم گردان. در واکنش به خوابش یعقوب وحشت زده شد و گفت یقیناً خدا در این مکان بوده و من او را نشناختم. در این رابطه، در این سفر ایمان یعقوب در کودکستان روحانی بود. یعقوب گفت خدایا اگر واقعا حقیقت داره که تو با من هستی و منو به خانه باز خواهی گردان میخوام بدونی که اگه منو برکت بدی من به تو ده یک خواهم داد. هر چیزی که به دست آوردم ده درصد آن مال تو خواهد بود بعد از خواب نخستین بار بود که یعقوب به بالا نگاه کرد همونطور که میخونید در 20 سال بعدی برای یعقوب چه اتفاقاتی میفته توجه کنید او چند بار به بالا نگاه میکنه هر بار که او به بالا نگاه میکنه به خدا نزدیکتر میشه اگه واقعا میخوایم شخصی با خدا باشیم دومین نگاه که باید بکنیم اینه باید به درون نگاه کنیم چیزهای خاصی هست که خدا میخواد ما راجع به خودمون بدونیم و برای اینکه اون چیزها رو به ما نشون بده ما باید به درون نگاه کنیم. بیاد بیارید که داوود چگونه دعا کرد. خدایا مرا تفتیش کن، قلب مرا بشناس، مرا امتحان کن، افکار مرا بشناس و ببین آیا در من شرارتی هست؟ و مرا در راههای ابدی هدایت فرما. همه ما باید این دعا رو بکنیم.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 او رو مجبور کرد که سومین نگاه رو به زندگی بکنه سومین نگاهی که ما باید در زندگی بفهمیم من به اون نگاه به اطراف میگم باید به بالا نگاه کنیم این جایی که همه چیز از اونجا شروع میشه بعد هر کسی که به بالا نگاه میکنه به درون هم نگاه میکنه کسی که به بالا نگاه کرد و واقعا به درون نگاه کرد حالا آماده است که به اطراف نگاه کنه و با مردم ارتباط پیدا کنه و بخشی از راه خدا و جواب خدا باشه برای دیگران برای اینکه به یعقوب یاد بده که به اطراف نگاه کنه خدا به او بستگانی داد یعقوب یه فریبکار بود مشکل او این بود چرا خدا باید مراقب یک آدم فریبکار باشه یک فریبکار بزرگ این روش مورد علاقه خدا برای بهبود یک شخص فریبکار هست پس خدا یعقوب رو به مدت 20 سال نزد دایش لابان قرار میده من فکر میکنم داستان یعقوب و لابان واقعا مزهکه. وقتی یعقوب با لابان روبرو میشه، به او میگه که چگونه پدر و برادرش رو فریب داده و برکت و حق سادگی رو گرفته. لابان لبخند زد و گفت، حقا که استخانت از استخوان منه و گوشت از گوشت من. چیزی که دایش لابان فکر میکنه اینه که تو یک فریبکاری پسر، اما من از تو فریبکارترم. و این حقیقته. یعقوب 20 سال برای لابان کار کرد، دست هفت سال اول یعقوب قرار بود که دختر لابان باشه که اسمش راهیل بود، در یکی از ترجمه ها میگه که او زیبا و خوشندام بود، هفت سالی که یعقوب برای لابان کار کرد، برایش مثل هفت روز بود چون که آشق بود. اما در شب عروسی، لابان ظاهرا او را مس کرد، راهیل خواهری داشت به نام لیه که به گفته کتاب مقدس چشمان او لوچ بود بایو یه چیزی مثل این وقتی صبح بعد از عروسی یعقوب بیدار شد او به چشمان چپ و کوچه که راحیل نگاه کرد او راهیل نبود او با عجله برای دیدن لابان رفت او فریب خورده بود یعقوب یک شیاد بود یک فریبکار و اگر چیزی هست که یک فریب کار ازش نفرت داره اینه که فریب بخوره چیزی که یک کلاه بردار ازش نفرت داره اینه که سرش کلاه بره چیزی که یک مانورگر ازش نفرت داره اینه که کسی براش مانور بده این دستور و مورد نظر خدا بود که به او مقداری از داروهای خودش رو بده. لابان سعی کرد بارها و بارها یعقوب رو فریب بده اما خدا یعقوب رو دوباره و دوباره و دوباره برکت میداد. در داستان ما می بینیم که یعقوب برکت می و فکر می کرد به خاطر زیرکی و بیراه رفتن برکت میگیره اما حقیقت اینه که برکت خدا بر روی زندگی او بود. زندگی او مثالی از فیض خدا هست. بالاخره او پیغام رو در انتهای داستان میگیره وقتی که به برادرش میگه فیض خداوند شامل حال من شد 20 سال بعد وقتی یک بحرانی پیش میاد و یعقوب لابان رو ترک میکنه درس روحانی دیگری هست که ما میتونیم از یعقوب یاد بگیریم بعد از اینکه یعقوب لابان رو ترک کرد اون نگران ایسو بود رابطه او با برادرش ایسو درست نبود یعقوب پیغامی برای برادرش ایسو فرستاد چون میخواست که با ایسو آشتی کنه وقتی کسی به نگاه به بالا ادامه میده خدا اون شخص رو وادار میکنه و اطراف نگاه کنه و افق روابطش رو اصلاح کنه وقتی که یعقوب اون پیغام رو به ایسو فرستاد او به پیغام او جواب داد و گفت که ایسو با چهارصد سوار به پیشوازش میآید یعقوب قطعا از ترس منجمد شد یعقوب از معبر یبوق عبور کرد و دعا کرد بعد او تجربه خیلی شخصی داشت من به اون تجربه ترسناک میگم. همه این مردان خدا این تجربه ترسناک را داشتن یا تجربه‌ای که کاملا شخصی بود. جزئیات تجربیات اونها خیلی متفاوت هست اما نتایج اونها شبیه هم هستند. یعقوب با یک فرشته کشتی گرفت و اون مسابقه کشتی بسیار جالبی بود. وقتی مسابقه شروع شد مهاجم کسی بود که یعقوب با او کشتی میگرفت. وقتی خدا دید که او بر یعقوب غلبه نمیکنه یعنی نمیتونه یعقوب رو شکست بده خدا پای یعقوب رو در بالای ران لمس کرد نمیدونم میتونید تصور کنید که اون چقدر میتونست دردناک باشه به این ترتیب خدا یعقوب رو شکست داد او یعقوب رو با لمس رانش زمین گیر کرد در مسابقه کشتی یعقوب تبدیل به مهاجم شد یعقوب کسی رو که با او کشتی میگرفت نگه داشته بود کسی که با او کشتی میگرفت گفت نزدیک است که سپیده بدمد بزار برم و یعقوب گفت نمیذارم بری مگر این که برکتم بدی خدا پرسید اسم تو چیه و او گفت یعقوب بعد یعقوب رو به خدا کرد و پرسید اسم تو چیه و خدا گفت چرا اسم منو میپرسی؟ یعقوب چون این شیادی بود یعقوب با خدا سر سرکله میزد وقتی خدا پرسید اسم تو چیه خدا میخواست یعقوب رو وادار کنه که به درون نگاه کنه و به این حقیقت اعتراف کنه که یک شیاده یعقوب وقتی گفت که نام من یعقوب هست اعتراف کرد که من یک شیادم بعد او رو به خدا کرد و پرسید اسم تو چیه و خدا گفت چرا اسم منو می پرسی؟ مهمترین چیز درباره مسابقه کشتی اینه وقتی مسابقه کشتی آغاز شد خدا بر یعقوب غلبه نکرده بود بلکه خدا زمانی قلبه کرد که یعقوب رو شکست داد دلیلی که خدا اسم یعقوب رو به اسرائیل تغییر داد اینه و اساس مسابقه کشتی این بود. خدا گفت من تو را رزمنده خواهم خان چون که مانند یک شاهزاده تو با خدا و با انسان و با خودت کشتی گرفتی و قلبه کردی و تو به روش خودت با من جنگیدی. 20 سال بعد از اولین شبی که یعقوب رویای نردبان رو دیده بود زمان سپری شده بود. اون رویا اولین باری بود که یعقوب به خاطر همه روابط متفاوت و بحرانهای بزرگی که تجربه کرده بود به بالا نگاه کرد. یعقوب بارها در طی 20 سال به بالا نگاه کرد. خدا داشت اشاره به همه اون زمانهایی میکرد که او به بالا نگاه کرده بود. وقتی که گفت تو به روش خودت جنگیدی تا به من رسیدی یعقوب و غالب شدی، به بالا نگاه کرده ای و مرا یافته ای، به درون نگاه کرده ای و با طبیعت یعقوب درون خودت جنگیده ای میدانی که چون زیرک و شیات و فریب کار بودی برکت نیافده میدانی که برکت یافده زیرا من تو را برکت یافده به اطراف نگاه کرده ای و به روش خودت با ایسو و لابان جنگیده ای. حالا آماده ای که بخشی از راه حل و جواب من باشی چون مانند یک شاه ساده تو در این سمسیر جنگیده ای. کتاب مقدس میگه خدا همانجا او را برکت داد. حقیقت دیگری هست که ما از زندگی یعقوب در درمی‌یابیم که برای من مفهوم زیادی داره که من به اون تاج برکت لنگ میگم چون یعقوب چنان شیادی بود که خدا نتوانست او را برکت دهد مگر زمانی که او را شکست خدا نتوانست تاج برکتی را که میخواست بر سر یعقوب قرار دهد بر سر او بگذارد تا زمانی که او را لنگ کرد جمله ای در کتاب مقدس هست که به کررات تکرار شده اون جمله اینه منتظر خداوند باشید. می‌دونید معنی جمله منتظر خداوند شدن چیه؟ انتظار برخلاف خلاقیت و مانو دادن و فریب کاری. اون عده‌ای که خودشون شرایط رو می‌سازن، کسانی از جنس یعقوب هستند و رو راست بگم من هم از جمله این مردان هستم مگر اینکه در روح باشم. خیلی از ما هستیم که شبیه او هستیم. ما فکر می‌کنیم می‌تونیم برکات روحانی رو مانند دیگر چیزها به دست بیاریم. فقط بریم بیرون و به چنگ بیاریم به اعتقاد من داستان یعقوب حقیقت زیبایی رو به ما نشون میده خدا این مرد رو به محلی به نام یبوغ میبره این شیاد، این فریبکار که منتظر خداوند نشد تا براش محیا کنه کسی که تصمیم گرفت بیرون بره و خودش شخصا اقدام کنه کلمه ابری یبوغ کلمه دویدن هست خدا این مرد رو به نقطهی به نام یبوغ میبره مردی که همیشه در حال دویدن بوده. همیشه در حال تلاش برای ساختن شرایط تا جایی که او رو به یبوغ میبره و او رو لنگ میکنه تا بتونه تاج برکت رو بر سرش بذاره. منتظر خداوند باشید. این چالش بزرگیه. به اعتقاد من منتظر خدا شدن ایمان بیشتری از هر چیز دیگری میطلبه. چون تا زمانی که میتونیم بدویم انتظار رو دوست نداریم. خدا باید کاری بکنه که ما رو منتظر بذاره. ما تا جایی که بتونیم میدویم و منتظر نمیشیم. وقتی که خدا یعقوب رو به یبوق میبره و او رو لنگ میکنه، یعقوب جز انتظار چه کار دیگه ای میتونه بکنه؟ این پیغام داستان یعقوب هست. من به این برکت لنگ کننده میگم. اگر وقت داشتیم و میذاشتیم همه شما شهادت بدید، مطمئنم که بسیاری از شما میگفتید که بزرگترین برکات خدا به روش برکات لنگ کننده بوده. شاید به این دلیل بوده که خدا نمیتونسته به روش دیگه‌ای به شما برکت بده. درست همونطور که او نتونست بدون لنگ کردن یعقوب به او برکت بده. سرانجام یعقوب بعد از مسابقه کشتی پیغام رو دریافت کرد. وقتی یعقوب ای ملاقات کرد گفت خدا با فیضش با من رفتار کرده. همه این چیزهایی که دارم به خاطر این نبوده که من قاصب بودم بلکه به خاطر این بوده که خدا با فیض با من رفتار کرده. این چیزیه که همه ما امروزه داریم. قبل از جلسه آیندمون بقیه کتاب پیدایش رو بخونید زندگی یوسف بابهای 37 و تا و 50 نمیدونم آیا شما میتونید خیلی از بحرانها و مشکلاتی رو که داشتید در پرتو این مسابقه کشتی که یعقوب با خدا داشت تفسیر کنی آیا خدا شما را به یبوق شخصی خودتون برده و شما رو لنگ کرده تا بتونه تاج برکتش رو بر سرتون بذاره گاهی قبل از اینکه بتونه ما رو برکت بده او باید ما رو بشکنه ما باید مثل یعقوب یاد بگیریم که تنها امید ما به خاطر فیض خدا به ماست نه به خاطر شایستگی ما یا فکر کنیم که میتونیم اونو به چنگ بیاریم یا کسب کنیم آیا اجازه دادید که خدا شما رو بشکنه تا برکتتون بده به اعتقاد من این یکی از بزرگترین پیام‌هایی است که در کتاب پیدایش به وسیله داستان زندگی یعقوب می‌بینیم خب ما باید درس زندگی یعقوب رو اینجا تموم کنیم من می‌خوام شما را با یه چالش تنها بذارم تا چیزی رو که از زندگی یعقوب آموختیم در زندگی خودتون به کار بگیرید. تشویقتون میکنم که از خودتون این سوال رو بپرسید. آیا در زندگی خودتون یک تاریخ روحانی رو تجربه کردید که واقعا و حقیقتا به بالا نگاه کرده باشید جایی که به خدا به عنوان تنها امید و منبع فیض نگاه کنی؟ اون موقع به درون نگاه کردید تا جایی که ببینید خدا چی میخواد که درونتون ببینید و بالاخره آیا به اطراف نگاه کردید؟ و اون چیزی رو که از نگاه کردن به بالا و نگاه کردن به درون آموختید در تمام روابطتون با مردم به کار گرفتید؟ به اعتقاد من اون دورنمایی از چیزیه که خدا میخواد من و شما تجربه کنیم و در حالی که با پای زیبای پیدایش رو میخونیم به کار میگیریم که با ما از فیض خدا در زندگی یعقوب و در زندگی خودمون حرف میزنه به اعتقاد من اون دورنمایی از چیزیه که خدا میخواد من و شما تجربه کنیم و در حالی که بابهای زیبای پیدایش رو میخونیم به کار میگیریم که با ما از فیض خدا در زندگی یعقوب و از زندگی خودمون حرف میزنه. همه شما مثل یعقوب کسی که با منور دادن و خلاقیت خود شرایط رو میسازه همیشه در حال دویدنه. هرگز منتظر نمیشه و میجنگه. این درس به ما یاد داد فیض خدا همیشه به سرسختی‌ها غلبه میکنه. اما با پرداخت بهایی همراهه معمولا خدا قبل از اینکه ما رو برکت بده ما رو میشکنه حالا تا دیدار بعدی باشد که خود خداوند عیسی مسیح و خدا پدر آسمانی که ما رو دوست داره و فیضش بیش از حد نیاز ماست ما رو در جایی که هستیم ملاقات کنه دلهای شما رو گرم بکنه و به شما امید بده تا با چالشهایی که این هفته پیش روتون هست مواجه بشین و شما رو در هر کار نیک تقویت کنه.